حکایت بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد، پسر را گفت، نباید که این سخن با کسی در میان نهی، گفت ای پدر فرمان تو راست، نگویم، ولی خواهم که مرا بر فایده این مطلع گردانی که مسلحت در نهان داشتن، چیست، گفت، تا مصیبت دو نشود. یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه، مگویند و با دشمنان که لاحول گویند شادی کنان؟